شیپورها، جامها، اسب سواران و دریای بلورین. عزیزان، درک نمادها در کتاب مکاشفه میتونه بسیار سخت باشه و بسیاری از دانشجویان رویان مکاشفه رو نامید کنه. پس ما باید چطور به این کتاب سخت و گیج کننده بپردازیم؟ به کلاس دیگه ای از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. برای بعضی از شما این کتاب منزله پایان سفری طولانیه. این دوره بررسی و مرور کتاب‌های کتاب, کتاب مقدس که بر کاربردی شخصی و عملی و متحدانی هر یک از کتاب‌ها در زندگیمون تأکید داره حالا به پایان خودش نزدیک شده و این آخرین جلسه ما هست خوشحالیم که در طی این دوره با ما همراه بودین و امیدواریم که این بررسی در زندگی شما برکتی آورده باشه حالا بیاد مطالعه آخرین کتاب از عهد جدید رو تموم کنیم و به درس امروز معلممون تحت عنوان مقدسین میخونن و گناهکاران تهنیت میگن گوش کنیم. وقتی بررسی کتاب پیدایش رو شروع کردیم، گفتم که مثل این هست که سفر طولانی رو با هم شروع کردیم. حالا در حالی که داریم به پایان این سفر نزدیک میشیم، امیدوارم از این واقعیت آگاه شده باشید که چیزی که در کل این سفر تجربه کردیم، فقط مقدمه ای بود بر 66 کتاب از کتاب مقدس. این دوره به هیچ وجه مطالعه ی کننده تحقیقاتی روی هیچ کدوم از اون کتاب‌ها نبود. هدف اصلی ما این بود که این کتاب‌ها رو به شما معرفی کنیم تا بتونید شخصاً به این کتاب‌ها مراجعه کنید و اونها رو در طول زندگی خودتون مطالعه کنید. اگر ما در برانگیختن شما و الهام دادن به شما موفق بوده ایم، اون موقع میتونیم بگیم در این دوره موفقیت داشتیم چیزی که واقعا مهمه اینه که وقتی شما شخصا به کتاب مقدس مراجعه میکنید خدا کلامش رو برای شما باز میکنه این ارزشمندترین قسمت از این دوره هست حالا بذارید باز هم به مکاشفه برگردیم وقتی بر مکاشفه تمرکز کردیم گفتیم که مکاشفه پیامی هست که به صورت رمزی از طرف خدا برای قوم خدا فرستاده شده و اگر شما توقع دارید اون پیام رو درک کنید به کلیدهای رمزگوشانی نیاز خواهید داشت. گفتیم که شاه کلید یا کلید اصلی روح القدس هست. کلید دوم آگاهی از این هست که تمامی نشانهها و نمادهای موجود در کتاب مکاشفه نمادهایی کتاب مقدسی هستند. کلید سوم دانستن خلاصه مکاشفه هست که چطور این کتاب تدوین شده و سازماندهی شده. به یوحنا معموریتی سه قسمتی داده شده. اون معموریت این بود. آنچه که می بینی در کتابی بنویس. او این رو در باب اول انجام داد. این تجربه او در جزیره پاتموس بود. به او گفته شد چیزهایی را که هستند بنویس. بسیاری معتقدند که این بخش در بابهای دو و سه وقتی که یوحنا نامه به هفت کلیسا را مینوشت انجام شد. بعد به یوحنا گفته شد آن چرا که باید بعد از این رخت دهد بنویس یا بخشی از این مکاشفه را که دریافت کردی و مربوط به آینده هست بنویس. بسیاری معتقدند که یوحنا این قسمت از ماموریت رو در آخرین باب از کتاب مکاشفه تمام کرد. از باب چهار تا انتهای کتاب مکاشفه این مشکل ترین قسمت از ماموریت یوحنا بود. با این حال کلید دیگری که مربوط به خلاصه کتاب هست، درک این هست که باب های 6 تا 19 چگونه طراحی شدند و این یکی از مشکل ترین کلیدها برای درک این کتاب است. ما در جلسه قبل وقت زیادی رو روی این صرف کردیم شما باید قدر آخرین کلید رو که پنجمین کلید هست بدونید. اگر چیزی رو که در جلسه گذشته گفتیم کاملا درک کرده باشیم کلید شماره پنج فروتن شدن درباره ترتیب زمانی این وقایه است که در کتاب مکاشفه ثبت شده اگر شما از باب 6 تا 19 رو بخونید و سعی کنید اون داوری ها رو که در اون باب ها اومدن درک کنید اگر بفهمید که تفسیرهایی هست که در بین اون داوریها داده شده و اگر بتونید همه اونها رو درک کنید اون موقع گمون میکنم شما درباره ترتیب زمانی وقوع این وقایه فروتن خواهید شد. همونطور که گفتیم مکاشفه به ما دیدگاهی از چیزهای آینده میده. بدون یک نمودار تعلیم مکاشفه تقریباً غیر ممکن هست. به این ترتیب خیلی مشکله که سعی کنیم این رو از طریق برنامه صوتی رادیویی تعلیم بدیم اگر یک دفتر یادداشت داشته باشیم خواهید دید که برای مطالعه کلام خدا بسیار مفید هست. من درباره ترتیب احتمالی وقوع زمانی که به شما ارائه میدم بسیار فروتن هستم من نمیدونم چرا ما میتونیم در مورد ترتیب وقوع زمانی این وقایه همه چیز باشیم جز فروتن در حالی که عیسی در متا 36 24 گفته هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بیخبرند بنا به ی عیسی کس نمیدونه در چه روز و ساعتی دنیا به پایان خواهد رسید حتی فرشتگان هم نمیدونن حتی خدای پسر هم نمیدونه تنها پدر اون رو میدونه حالا اگر فرشتهها نمیدونن اگر پسر خدا نمیدونه و اگر تنها خدای پدر میدونه چطور ما میتونیم این همه مغرور باشیم و سعی کنیم ترتیب وقوع زمانی رو به درستی کنار هم قرار بدیم. بنابراین در مورد ترتیب وقوع زمانی این وقایه که در مکاشف شرط داده شده فروتن باشیم. ما میتونیم در مورد واقعیت این وقایه قاطع باشیم و با اقتدار بگیم که این وقایه اتفاق خواهند افتاد. اما باید فروتن باشیم و اقرار کنیم که ما نمیتونیم در مورد زمان دقیق وقوع این حوادث مطمئن باشیم. چونکه عیسی به وضوح در اولین باب از کتاب اعمال به ما گفته که دانستن وقتها و زمان این وقایه به ما ربطی نداره. یکی از این وقایهی ای که اتفاق خواهد افتاد ربایش کلیسا هست که طی اون کلیسا از دنیا برداشته خواهد شد. بعد رنج عظیم بر روی زمین واقع خواهد شد. بعد از اون عملا آمدن سانویه عیسی مسیح خواهد بود که او با کلیسایش به زمین برمیگرده تا حکمرانی تا بسیاری معتقدند که حکمرانی او عملا هزار سال خواهد بود اینها کسانی هستند که به هزاره معتقدند حکومت عملی عیسی مسیح بر روی زمین موقعیت الهیاتی شما در مورد تمامی این چیزها همونطور که قبلا گفتیم مربوط به اون پادشاهی هست اگر شما کسی هستید که به پیش از هزاره معتقدی یعنی باور دارید که عیسی پیش از اون حکومت هزار ساله برخواهد گشت اگر شما باور دارید که او در پایان حکومت هزار ساله خواهد اومد، اون موقع به شما پست میلینیال گفته میشه. یعنی کسی که باور داره مسیح بعد از حکومت هزار ساله باز خواهد گشت. قبل از جنگ جهانی اول مردم معتقد بودند که اوضاع بهتر و بهتر خواهد شد و این وضع تا اونجا پیش خواهد رفت که ما عملا وارد پادشاهی خواهیم شد. این اعتقادی رایج پیش از جنگ جهانی اول بود. اما بعد از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ خلیج و همینطور جنگ های گرم و سرد دیگه، اون دیدگاه پست میلینیال دیگه چندان رایج نیست. چون که واقعا واقعاً رفته رفته بهتر نشده. اگر معتقدید که حکومت هزار سال چیزی عملی نیست، اون موقع شما یک میلینیال هستید. اما وقتی این وقایع رو کنار هم قرار میدید سعی کنید در کنار نظراتتون فروتن باشید کلید شماره 6 این هست که هدف ما از مطالعه کتاب مکاشفه باید بیشتر پرستش باشه تا درک اون کتاب این هم چیز بسیار مهمیه برکتی بر کسانی وعده داده شده که این کتاب رو میخوانن و اون رو به دیگران نقل میکنن چیزهای زیادی در این کتاب هست مخصوصا در نامه که تعلیماتی هستند و به اندازه تمام رسالات عهد جدید کاربردیین. چیزهای زیادی در مکاشفه هست که ما درک می کنیم و نصیحت شده که از اونها اطاعت کنیم. در راستای اهدافمون برای مطالعه این کتاب شما باید دنبال این باشید که کاربردی شخصی و عملی از تعالیمی داشته باشید که از این کتاب نبوتی درک می کنید. اما بخش های وسیع از کتاب مکاشفه هستند که، همونطور که قبلا دیدیم اونها رو درک نمی‌کنیم. هدف شما چی هست وقتی آخرین کتاب کتاب مقدس رو مطالعه کنید؟ آیا میخواید یک متخصص کتاب مکاشفه بشید؟ ما میدونیم که همه هایی که در مکاشفه هستن قابل تفسیرن. چون که فرشته‌ای که این چیزها رو برای یوحنا می کرد، معنی هر کدوم از این نمادها رو برای او توضیح داد. خیلی دلم میخواست وقتی فرشته اون چیزها رو برای یوحنا توضیح میداد که معنی هر سمبولی چیه من همونجا حضور داشتم این چنان تجربه طاقت فرسایی برای یوحنا بوده که دو بار در باب 19 آیه ده و باب 22 آیات 8 و نه یوحنا در مقابل فرشته ای که این نمادها رو برای او تفسیر میکرد، بر خاک افتاده و او را پرستیده ما یقیناً می میدونیم چرا یوحنا میخواست فرشته را بپرسته چون او کمک کرده بود که این کتاب رو درک کنه اما فرشته به او گفته نه چون این نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت. یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارن. فقط خدا را پرستش کن. انجیل یوحنا تماما مربوط به هویت ایسا هست. به گفته این فرشته این تنها کتابی نیست که تماما مربوط به عیسی مسیحه. همونطور که بارها اشاره کردیم وقتی عیسی مسیح کتاب مقدس را برای شاگردان باز کرد در باب 24 لغاب اونها گفت که تمامی نوشته های شریعت انبیا و مزامیر همه در مورد او هست تا زمانی که عیسی این دیدگاه را به شاگردان نداده بود کتاب مقدس برای اونها کتابی بسته بود وقتی عیسی به رسولان گفت که هدف یا روح تمامی نبوتها در مورد او هست کتاب مقدس برای رسولان باز شد در واقع این همون چیزی بود که فرشته برای یوحنا توضیح میداد که این نه تنها برای کتاب مکاشفه بلکه در مورد تمامی کتابهای کتاب مقدس نیز صدق میکنه آیا این دیدگاه خوبی در نبوت نبود ما شاید فکر کنیم که یوحنا پیغام رو فهمیده بود اما کمی بعد در باب 22 میخونیم که یوحنا می نویسه من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم و همین که اینها را دیدم و شنیدم در مقابل آن ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم اما او به من گفت نه چونین نکن من خادمی هستم مانند تو و برادرانت یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند، فقط خدا را پرستش کن این بیان واضحی از هدف ما از خواندن کتاب مکاشفه است هدف این نیست که همه اون رو درک کنیم بلکه کتاب مکاشفه را همونطور که انجیل یوحنا رو میخوندید بخونید تا عیسی رو ببینید بعد ایسایی رو که میبینید بپرستید و خدا رو بپرستید و همونطور که یوحنا در باب اول مکاشفه خاک افتاد به خاک بیفتید و خدا رو بپرستید تنها خدا رو بپرستید نه این زبان نشانه زیبا و عمیق و حیرتانگیز مکاشفه عیسی مسیح رو یک بار من در شهری که خدماتی کلاس‌های کتاب مقدس رو پشتیبانی می کرد در مورد مکاشفه سخنرانی کردم در همون پنج دقیقه اول جلسه یکی از خادمین بلند شد و جلسه رو ترک کرد او به یکی از راهنمایان جلسه گفته بود که من متخصص کتاب مکاشفه هستم و با چیزهایی که گفته شد موافق نیستم بعدها رئیس انجمن خدماتی به من گفت که با کاری که او کرد سوئزن همه رو برانگیخت و خود من شخصا مطمئن نیستم که او متخصص مکاشفه باشه. چه کسی در مکاشفه متخصصه؟ هدف از خواندن مکاشفه متخصص شدن درون نیست. بلکه برعکس دیدن عیسی هست که روح و هدف تمامی نبوتها ها هست و بعد از اون پرستش خدا هست. بذارید مکاشفه احساس ترس، حیرت و پرستش رو در شما افزایش بده و وقتی این کتاب رو میخونید به حضور خدا بیایید. به روح القدس چیزی رو بگید که اون یونانی ها در انجیل یوحنا به گفتند: ما باید ایسا رو ببینیم وقتی کتاب مکاشفه رو مطالعه می کنید هدفتون این باشه که ایسا رو ببینید او رو بپرستید خدا رو بپرستید و این ششمین کلید هست که به شما برای درک مکاشفه کمک میکنه. کلید شماره هفت این هست که از خودتون بپرسید چرا خدا این چیزها رو در مورد آینده به ما گفته. همونطور که قبلا بارها دیدیم؟ وقتی خدا پردر کنار میزنه و به ما میگه که همه چیز چگونه پایان خواهد یافت، اون منظوری از این کار داره. وقتی خدا در مورد خلقت با ما صحبت کرد، به این دلیل نبود که احساس میکرد در این مورد به ما مدیون هست. وقتی خدا با ما درباره این صحبت میکنه که همه چیز چگونه پایان خواهد یافت یا چه وقایی در دنیا اتفاق خواهد افتاد، به این دلیل نیست که خدا احساس میکنه. باید قبلا این چیزها را با ما هماهنگ بکنه و بعد از اون این وقعی اتفاق بیفته. اما عد ای هستند که اینطور به این مسئله نگاه میکنن به هر حال خدا مجبور نیست که به ما توضیح بده. خدا مجبور نیست که از من و شما اجازه بگیره تا این وقای اتفاق بیفتن. براساس کتاب مکاشفه چرا خدا مطالبی رو در مورد خلقت و مسائل مربوط به آینده با ما در میون گذاشته. این تاکید رو ملاحظه کنید، در تمام کتاب مقدس در مورد آینده به ما گفته شده و ما رو به چالش کشیده که زندگی پاک و مقدس و خداشناسانه ای داشته باشیم. چرا که همه چیز در اطراف ما روزی زوب خواهد شد. برادران هرگز تسلیم نشید. هرگز اعلام شکست نکنید. همیشه به کار خداوند ادامه بدید. بدونید که در خداوند زحمت شما هدر نخواهد رفت. عزیزان ما پیشاپیش فرزندان خدا هستیم اما آن چیزی که در آینده خواهیم شد هنوز آشکار نشده تنها چیزی که میدونیم اینه که وقتی او ظاهر بشه ما مانند او خواهیم بود چون که او را همون طور که هست خواهیم دید در دوم پتروس باب سه او میگه پس ای عزیزان حال که این امور را انتظار می کشید به سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی و بی و در صلح یافت شوید کاربردش به نظر میرسه این باشه که در پرتو این واقعیت که آنچه در پس پرده به شما نشون دادم اتفاق خواهد افتاد در حال حاضر در این بود از زندگی باید چگونه انسانهایی باشید زندگی شما چقدر باید مقدس باشه پس کاربرد این هست وقتی مکاشفه رو میخونید به این فکر کنید یادتون باشه که هدف خدا از دادن مکاشفه به ما این نیست که ما رو متخصص کارهایی بکنه که در آینده اتفاق خواهد افتاد خدا میخواد بر زندگی فعلی و روزمره ما در پرتو همه چیزهایی که در آخرین کتاب از کتاب مقدس آشکار کرده تأثیر بذاره آیا میدونید خیلی از افراد به خاطر کتاب مکاشفه به عیسی مسیح ایمان آوردند؟ خیلی از ایمانداران به خاطر چیزی که در مکاشفه دیده به بیسای مسیح ایمان آوردن بسیاری از متن‌هایی که در مکاشفه در مورد آینده صحبت می‌کنند و می‌گند که در جهان چه وقایعی رخ خواهد داد، توسط خدا با قوت به کار گرفته شدن تا اینکه مردم رو به ایمان به مسیح هدایت کنند. وقتی مکاشفه رو مطالعه می‌کنید یادتون باشه که این سوال رو بپرسید: خداوندا، چرا در مورد پایان تاریخ بشریت و بازگشت ثانویه عیسی مسیح با ما صحبت می‌کنی؟ کلید شماره هشت وقتی به پشت پرده نگاه می کنید و چیزهایی را که اتفاق خواهند افتاد در رابطه با بود ابدی می بینید، پرهیز از افکار واحی هست. کتاب مقدس با استفاده از نمادها در مورد زندگی در آن سوی قبر با ما صحبت میکنه. به این دلیلی که کتاب مکاشفه باید کتاب نمادها باشه. تمام تعالیم درباره بود آینده به صورت سمبولیک است. منظور کلام خدا چی هست وقتی در مورد بهشت و جهنم با ما صحبت می در حالی که بهشت با نمادهای های زیبایی توصیف شده، مانند دروازه های مروارید و جده های تلایی، جهنم با نمادهایی چون آتش، تاریکی، پایین ترین نقطه سیاهچال و تمامی چیزهای وحشتناکی که می بینیم توصیف شده. اگر خدا به ما مکاشفه العاده ای نده، ما واقعا نمی در بعد ابدی چه چیزهایی هست؟ تصور کنید دو در درون شکم مادری هستند و قبل از اینکه متولد بشن ما بتونیم با اونها در مورد دنیای واقعی و زندگی گفتگو کنیم. ما چطور میتونستیم با اونها صحبت کنیم در حالی که اونها هرگز دنیای حقیقی رو ندیده بودن؟ ما چه چیزی میتونستیم به عنوان مثال به اونها بگیم؟ به همون ترتیب ما چه چیزی در مورد بود آینده میدونیم؟ ما هرگز اونجا نبودیم. عیسی مسیح اونجا بوده و از اونجا برگشت، پس هر چیزی که او میگه ما میدونیم، اما او باید وقتی در مورد بود آینده با ما صحبت میکنه از سمبلها استفاده بکنه. چون که ما هرگز اونجا نبودیم. اگر شما میتونستید با اون دقلوها صحبت کنید چطور میتونستید برای اونها درختان پرندگان، اتومبیل و هواپیما و چیزهای دیگر رو به تصویر بکشید. چون اونها هرگز در این زندگی و در این دنیا با ما نبودند، و این چیزها رو ندیدند، این نمادها در مکاشفه باید به طور سمبولیک به ما بگن که بود ابدی چگونه جایی هست چون که ما هرگز اونجا نبودیم و هیچ چارچوبی نداریم که به ما کمک کنه دنیای سوی قبر رو درد کنیم در جهنم یا در بهشت اگر واقعا میخواید بدونید که اونجا چه شکلی خواهد بود اگر واقعا مکاشفه ای در مورد آینده میخواید با پیش‌داوری در ذهن خودتون به این کتاب نپردازید. من افراد زیادی رو دیدم که اینطور به کتاب مکاشفه نزدیک شدن. مثلا فکر کنید که شما یکی از عزیزانتون به بود ابدی رفته و میدونیم که اون شخص ایماندار نبوده. من افراد زیادی رو میشناسم مثل هایی که همه چیز رو در مورد بود ابدی در کتاب مقدس از این نظر تفسیر میکنند که چه تأثیری بر شوهر متوفای اونها خواهد داشت. اگر شما سعی کنید به چنین شخصی بگید که بعضی از این سمبول ها چه معنی دارند، اونها خواهند گفت نه نه این نمیتونه حقیقت داشته باشه چون در این صورت شوهر من کجا قرار خواهد گرفت من فکر نمی کنم این چیز خیلی آرام ای باشه و من معتقدم که ما نباید مردم را با گفتن چیزهایی از این قبیل بترسونیم آیا می دونی که به یه جای گرم خواهی رفت و تا عبد خواهی وقتی شما به یک بیوه ماتم زده تسلی میدید نباید از چنین چیزهایی صحبت بکنید که همش در مورد جهنم صحبت کنید و بهش بگید احتمالاً شوهرش اونجاست این به هیچ وجه تسلی دهنده و قابل توجیه نیست بر نکته مهمی که میخوام بگم اینه که شما اگر با افکاری واهی به کتاب مقدس نزدیک بشید هرگز نخواهید فهمید که پشت اون پرده چه چیزی هست همیشه اونطور که دل شما میخواد نخواهد شد و قرار نیست که عزیزان شما که قبلا مرده به خاطر خاست شما در راحتی باشند. این جور افکار واهی شما را به حقیقت در مورد بود ابدی نخواهند رسون پس وقتی به موضوع آینده در کتاب مکاشفه می رسید از این افکار واهی اجتناب کنید مثل سمویل در مقابل پرده بیستید و بگید بگو خداوندا بنده ات گوش می کند من ممکن نیست بتونم چیزی در مورد پشت پرده بدونم مگر اینکه تو اون رو به من نشون بدی. پس هر آنچه که میخواهی به من نشون بده. چون من هیچ فکری در این مورد ندارم. یه بار خانومی به من گفت: "شبان، فکر منو با کتاب مقدس آشفته نکن." من فکرامو کردم. اینطور به کتاب مکاشفه نزدیک نشید. وگرنه هیچ چیزی از آنچه که در پشت پرده هست و یا چیزی که در دنیا اتفاق خواهد افتاد نخواهید فهمید. در دو باب مورد علاقه من بابهای های چهار و پنج ما کلید شماری نه رو میبینیم. در بابهای های چهار و پنج ملاحظه میکنید هر چیزی در اطراف تخت جایگاهی داره و تخت مرکز آسمان هست. اصلی ترین چیز در مورد آسمان اینه که در اونجا تختی وجود داره. هر چیزی که در اون دو باب زیبا شرط داده شده در رابطه با وضعیت و موقعیتش نسبت به تخت هست. برره در وسط تخت ایستاده بیست تخت کوچک در اطراف تخت هستند. رعد و برق از تخت بیرون می آیند. هفت مشعل در مقابل تخت هستند. دریای بلورین در مقابل تخت هست. صدای فرشتگان بیشماری در اطراف تخت شنیده می شود. اینو ملاحظه کنید چون بسیار مهمه. هر مخلوقی در آسمان بر روی زمین و زیر زمین و در دریا هیچ جایگاهی در مقابل تخت ندارن. چون که اونها در بود آسمانی نیستند در باب 5 اینطور به ما گفته شده آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای زنده و آن پیران شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود و با صدای بلند چنین میگفتند آن بره زب شده سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانایی است و سزاوار حرمت و جلال و ستایش مانند هر کس دیگری در آسمان اونها بره رو پرستش میکنند اما به اونها جایگاهی در اطراف تخت داده نشده و با صدای بلند چنین میگفتند آن برره ذعب شده سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانایی است و سزاوار حرمت و جلال و ستایش سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست با هر آنچه در آنهاست چنین میسرودند ستایش و حرمت و جلال و قدرت تا ابد از آن تخت نشین و بره باد مانند هر کس دیگری در آسمان اونها بره رو پرستش می‌کنند اما به اونها جایگاهی در اطراف تخت داده نشده این بسیار مهم است در باب دوم فیلیپیان پولس گفته روزی هر زانویی خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد. ایسای مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. بسیاری از مردم میگن که این باید به این معنی باشه که همه نجات خواهی یافت. این باید به اون معنی باشه که بعد از اینکه مردم به بود دیگر رفتن از بی ایمانی خودشون دست میکشند و مجبور میشن که زانو بزنند و اقرار کنند که ایسای مسیح خداوند است و این سبب نجات آنها خواهد شد. به این تعلیم جامعیت یا آمگرایی گفته میشه. این تعلیم امروزه بسیار رایج هست. جامعیت در اروپا بسیار قدرتمند بود و حالا در بسیاری از جاهای دیگر دنیا هم قدرت گرفته. من باور نمی‌کنم این چیزی باشه که کتاب مکاشفه در پشت پرده به ما نشون می ده. هر زانویی خم خواهد شد، هر زبانی اقرار خواهد کرد. همه این مخلوقات در جهنم هستند. هر کسی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است. چون این چیزیه که خدای پدر رو جلال خواهد داد. اما به اونها جایگاهی در اطراف تخت داده نخواهد شد چون اونها اونجا نیستند و این حقیقتی وحشتناک است. این صحنه زیبایی در اون دو باب هست. یکی از وصفهای مورد علاقه من در مورد جمعیتی که در اطراف تخت خدا رو میپرستن این هست. اونها سرودی تازه میخونن. من واقعا از موسیقی لذت میبرم. شما میتونید از همون ابتدای بررسی کتاب مقدس بدونید که موسیقی چی هست. چرا خدا موسیقی رو به ما داده، چرا موسیقی مهم هست و هدف و وظیفه اون چیه؟ وقتی قوم خدا نیاز دارند که چیزی بیان نشدنی رو ابراز کنن، خدا به اونها موسیقی میده. وقتی بنی اسرائیل از دریای سرخ و بور کردن، اونها بی اختیار سرود موسی رو خوندن. اونها نمیتونستن جلوی خودشون رو بگیرن. اونا چنان احساس قدر شناسی وصف ناپذیری در دلشون داشتند که تنها روش ابراز اون موسیقی بود داوود میگه خدا معجزه موسیقی رو به ما داده تا خدا رو بپرستیم وقتی شما از دروازه های و, و از راهروهای پرستش به حضور خدا می آید معمولا همیشه با سرود میآیید چون اونجا در حضور خدا شما نمیتونید کاری جز سرود خواندن بکنید خواندن در حضور خدا غالبا خواندنی غیر ارادی هست من معتقدم که خدا به ما هدیه دعا و موسیقی رو داده تا بتونیم چیزهایی رو که نمیتونیم به روش دیگر و یا در خلوت دعایی به خدا بگیم با موسیقی به او اعلام کنیم وقتی در آسمان وارد بشیم و کنار تخت قرار بگیریم موسیقی که اینجا در روی زمین میشناسیم اونجا کار نخواهد کرد اون موزیک شایسته ای نخواهد بود بنابراین خدا سرودهای تازه‌ای به ما خواهد داد. حقیقت حیرت‌آمیز کتاب مکاشفه به این منتهی میشه که کتاب مکاشفه کتابی حیرت‌آمیز هست همونطور که عیسی در تعالیمش به ما میگه این کتاب هم تعلیم میده که در بود آینده واقعا فقط دو گزینه وجود داره. بهشت یا جهنم. زیباترین سمبولی که ذهن بشر قادر به درک اون هست برای توصیف بهشت به کار رفته و وحشتناکترین سمبولی که ذهن بشر میتونه درک کنه برای توصیف جهنم به کار رفته. در این دو باب مورد علاقه من مقدسین رو میبینیم که کنار تخت سرودی تازه میخونن. این بسیار زیبا هست. اما گناهکاران هم هستند که برر رو میپرستند. اونها برر رو از جهنم میپرستند. نه از بهشت و این وحشتناکه. خدا مکالمه خودش رو در پیدایش سه با این سوال با ما شروع کرد کجا هستی؟ همین الان کجا هستی؟ چون خدا ما رو دوست داره به این دلیل از ما میپرسه کجا هستی؟ روزی ما تا عبد در جایی خواهیم بود یا کنار تخت سرودی تازه خواهیم خوند یا کنار گناهکاران برر رو از جهنم پرستش خواهیم کرد ما در یکی از این دو جا خواهیم بود و چون خدا ما رو دوست داره میخواد همین الان از ما بپرسه کجا هستی؟ چونکه که کجا هستی روحانی تعیین خواهد کرد که ما در بود آینده کجا خواهیم بود و اون موقع همونطور که در مثل عیسی از مرد ثروتمند و ایل آزر دیدیم موندن ما در اونجا اجتناب ناپذیر خواهد بود وقتی که به اونجا رسیدید هیچ راه میانبری برای بود دیگر وجود نداره حالا به کلید شماره ده میرسیم ملاحظه میکنید که در مکاشفه ما دو داستان داریم که همزمان گفته شده. امروز ما چیزی داریم که به اون رسانه جمعی میگیم. بعضی از متخصصین دریافتند که ذهن ما قابلیت فکر کردن صریح از صحبت کردن داره. یک سخنگو که خیلی سری صحبت میکنه میتونه در دقیقه 100 کلمه ادا کنه. اما شما میتونید چیزی بین 300 تا 400 کلمه در دقیقه فکر کنید. به این دلیل وقتی به یک سخنرانی گوش میکنید ممکنه دائما خسته بشید و با خودتون بگید زود باش دیگه اصل مطلب رو بگو متخصصین رسانه‌های های جمعی میگوین مردم میتونن حدود 18 اسلاید مختلف رو در آن واحد ببینن و همه اونها رو به خاطر بسپارن به این دلیل که ذهن شما سریعتر از زمانی کار میکنه که در هر بار فقط یک اسلاید میبینید به مکاشفه هم به عنوان یک نمایش واقعی نگاه کنید منظورم این هست که در اونجا یک داستان آسمانی در باب های چهار، پنج، نوزده، بیست، بیست و یک و بیست و دو هست و همزمان داستانی زمینی هست که در باب های شش، هش، نه شانزده، نوزده و بیست گفته شده. کلید شماره یازده این هست که هرگز فراموش نکنید که برخی از این نمادها ها صرفا اطلاعاتی هستند یا ما میتونیم به اونها باب های معترضه بگیم. که یادداشت هایی هستند که به ما کمک میکنند موضوع اصلی این دو داستان رو درد کنید یادتون باشه که اون جملات معترضه یا یادداشت از ترتیب وقوع زمانی مطابقت نمیکنند کلید شماره دوازده اینه اون مکاشفه ایسای مسیحه پس همونطور که در انجیل یوحنا به دنبال ایسای مسیح می گشتید حتی همونطور که در عهد قدیم دنبالش می گشتید در کتاب مکاشفه هم به دنبال عیسی مسیح بگردید همونطور که قبلا اشاره کردم، شما باید در تمامی کتاب کتاب مقدس دنبال ایسای مسیح بگردید. ایسای مسیح گفته تمامی کتاب مقدس به من شهادت می و در مورد من هستند. این به طور خاص در این کتاب آخر صدق میکنه. انجیل ها منجی رنج کشیده رو آشکار می کنن. رسالات منجی رو نشون میدن که سر کلیسا هست و اون رو با خون خودش خریده، اما مسیح در مکاشفه شاه شاهان و رب الارباب است او وقتی در بازگشت ثانویه‌اش برمی‌گرده او را پاره پاره نخواهند کرد و یا تاج خار بر سرش نخواهند گذاشت او شاه شاهان و رب الارباب خواهد بود به این مکاشفه از مسیح نگاه کنید و ببینید که مسیح به عنوان شاه شاهان و رب الارباب ظاهر شده در کلید شماره 13 ملاحظه کنید که به یوحنا گفته شده که او از چیزهایی مکاشفه خواهد داشت که باید از بین بروند در کتاب جامعه سلیمان با همه ی حکمت خارقلادهش به ما گفته که داوری خواهد آمد داوری خواهد بود چون که بیعدالتی اجتماعی زیادی وجود داره حتی اگر ما قادر بودیم هیتلر رو به محاکمه بکشیم چطور میتونستیم ادالت رو در مورد او به جا بیاریم اگر خدای قادر مطلق خدای عادلی هست بلاخره هیچ بی ادالتی در دنیا نخواهد من و چون بیعدالتی زیادی هست، باید داوری هم باشه. حقایقی مثل این در کتاب مکاشفه آشکار شده، چیزهایی که باید اتفاق بیفته. نه تنها چیزهایی که اتفاق خواهند افتاد، اونها چیزهایی هستند که باید اتفاق بیفتند. بلاخره کلید شماره 14 اینه که وقتی این کتاب رو میخونید، بدونید که این چیزیه که ما میتونیم درد کنیم و برکتی به ما برای خوندن این کتاب وعده داده شده اگر ما واقعا پیغام این کتاب رو بشنویم و از اون اطاعت کنیم چون این اطاعتی اگر ما نتونیم پیغام کتاب و برکت اون رو درک کنیم غیر ممکن خواهد بود کلید شماره پانزده وقتی ما این آخرین کتاب رو میخونیم اینه که این کتاب و تمام مطنهای اون رو که مربوط به عالم پس از مرک هستند و مربوط به چیزهای آینده هستند، با مدهای مربوط به امور آینده در سایر کتاب کتاب مقدس مقایسه کنیم. این به ما کمک خواهد کرد که درک بهتری از امور آینده داشته باشیم. و حالا از همه شما به خاطر همراهیتون در این دوره بررسی عهد جدید و عهد قدیم تشکر می کنیم. امیدواریم که شما به مطالعه وفادارانه کتاب مقدس با ما ادامه بدید. اما پیش از اون ما دعا می کنیم که خدا شما را با استفاده از این درس ها به شخص دیگری که میخواد تبدیل کنه و شما بدونید که در خداوندمان ما نیسای مسیح کی هستید. دوستان به سختی میتونم باور کنم که وقت مطالعه کتاب مقدس با همدیگه به پایان رسیده. با این حال میخواییم همین شما رو که شاید در مطالعه عهد قدیم با ما هم نبودید تشویق کنیم که برگردین و از اول اون درس ها رو با ما بخونید. چیزهای زیادی هست که خدا میخواد به شما تعلیم بده، پس به کلام اون ادامه بدید تا کلام اون در شما ادامه پیدا کنه. امیدواریم وقتی به خدای امید ما اعتماد میکنید، او شما رو با شادی و آرامش پر کنه تا شما به یاری روح القدس سرشار از امید بشین. همد و پرستش و عزت و جلال برو باد تا عبدال آباد. امیدواریم فیض خداوند ما عیسی مسیح بر تمام قوم خدا قرار بگیره و تا ابد بمونه آمین